اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. محمد، رجب رجب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأولين والآخرين أبي القاسم المصطفى محمد صل <تصفيق> محمد <تصفيق> وعلى آله الطيبين الطَّاهِرينَ المعصومين وبعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغير ما بقومٍ حتا یغیر صدق الله العلي العظيم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائه عليك منا جميع و رحمه الله سلام, <سلام> على المحسنين على <اله> سپاسگزارم که به برکت امام حسین علیه السلام برای همگان ما و شما های ویژه خودش را لطف میفرمایند. تا هنوز راجع با این بحث که داریم دنبال میکنیم به ایده ای از مطالب دست یافتیم امروز لازم است راجع با جامعه آشنایی پیدا کنیم که جامعه در قرآن کریم چگونه دیده شده است تا ما خود جامعه ساز را که شناختیم در روزهای قبل و آن عبارت از طلبه بود یا همه عالم دینی امروز باید جامعه را بیشناسیم اون ای که قرار هست آن را بیسازیم از نظر قرآن کریم و همچنین از نظر علوم جدید جامعه رو چی میگن و چه نظریه نسبت به جامعه وجود دارد. چرا جامعه دچار انهتات و فروپاشی و پسرفتگی میشود و چه چی, چی سبب تحول جامعه و پیشرفت جامعه میگردد. اینا همون مباحث مقدماتی است که ما را کمک میکند تا در پیش و روند کار موفق بشه خود انسان اجتماعی آفریده شده است وقت قرآن می فرماید اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِنْتَكَرِ وَاُنْسَا وَاُنْسَا این خود همه آیه و آیات دیگه قرآن کریم و نصوصی که در دین وجود دارد بیانگر این است که انسان فردی نیست بلکه انسان موجود اجتماعی است به تنهایی سخت است برای انسان زندگی سیپری کند بلکه انسان در قالب اجتماع می تواند زندگی کند و رشد کند و اون ویژگی درونی و اون سرمایه درونی که در خودش نهفته هست رو در قالب اجتماع می تواند تباروز دهد بنابراین خود انسان موجود اجتماعی است وقتی انسان موجود اجتماعی است طبعاً با وجود انسان ها جامعه با وجود می آید جامعه ای که قبلا در تعریف مختصرش بر اساس علوم اجتماعی یادآوری شد که باید در مکان مشترک زمان مشترک زندگی همسان و اهداف همسان داشته باشد افغانستان یا خراسان بزرگ یک محله هست زمان هم زمان فعلی و مردم هم هدف مشترک که این کشور را دارد و رشد می دارد لذا یک جامعه افغانی یا خراسانی از اشیاد می شود ولی با پاکستان کنار هم یک جامعه گفته نمی شود چرا چون یک رکن از اجتماع که همو اهداف مشترک باشد درش وجود ندارد بنابراین جامعه بر این اساس و انسان اجتماعی ما داریم وقتی چون این هست آیا این جامعه واقعا یک وجود مستقل غیر از وجود افرادش دارد یا نه جامعه وابسته به افرادش هست با توجه به آیاتی که در قرآن کریم هست و نصوصی که ما در اسلام داریم جامعه خود به خود هم مورد نظر و مورد توجه قرار گرفته شده است واژه جامعه گرچه عربی هست کلمه عربی است اما در قرآن کریم اگر واژه جامعه به کار رفته باشد و همچنین در روایات این جامعه منظور جامعه امروزی که ما ازش تصور داریم ممکن است اراده نشده باشد بلکه در قرآن کریم جای کلمه جامعه از امت استفاده شده است آیاتی داریم من هم امت مقتصده آیای دیگه هم زینا لکل امت عملهم. برای هر امت و گروهی عمل خودشان را زینت بخشیدیم زیبا ساختیم راجع به حیزب هم کلمه حیزب دارد دیگه کلو حزبین به ما لدهیم هر حزبی در پیش خودشان خوشحال هستن در قرآن کریم وقت منظور جامعه را داره بیان میکنه از واجه های امت استفاده شده کلماتی که در قرآن کریم امت هست بیانگر هم جامعه است که ما و شما در فارسی ازش یاد میکنیم یا در زبان دری ازش یاد میکنیم این جامعه هست بنابراین قرآن کریم به کل جامعه توجه کرده جامعه یک چیز موحوم نیست بلکه جامعه رو می توان گفت یک است منتها اعتباری نه اینکه غیر از افرادش باشد همو افرادش هست وجود افرادش هست منتها در کل هم یک چیزی حساب می شود یک حقیقتی هست جامعه یک چیز مفهوم و ناپیدا نیست برای این جهت هست که شاید می توان گفت یکی از عوامل رشد انسان یا یکی از اوامل پسرفت انسان جامعه هست اگر انسان در یک جامعه متدین زندگی کند طبعا بر هم اساس متدین بار می آید ولی اگر در یک جامعه غیر تدینی زندگی کند به با همه باک بیباک بار می آید این اثر جامعه و اجتماع هست بنابراین جامعه خودش حقیقت دارد، ولی آیا حقیقت غیر از افرادش هست یا نیست؟ نه حقیقتی غیر از افرادش نیست گرچه ایک حقیقتی هست مسئله دیگهی که در این باب توجه باید کرد جامعه در کل همونطوری که گفتیم یک حقیقت اعتبار داره از یک سنتی هم پیروی می کند از یک قانونمندی و یک عللمندی هم پیروی می کند در جامعه چیزی خود به خود به وجود نمی آید چون حقیقت هست حقیقت خود به خود تحقق پیدا نمی کند. بلکه بلکه خاطر یک علتی با وجود می آید هیچ چیزی در این دنیای طبیعی که ما شما زندگی میکنیم بدون علت به وجود نمی آید بر این اساس است وقتی میگویند تاریخ تاریخ گونه های مختلف پیدا میکند گاه تاریخ نقلیست فقط داستان هست قصه هست که مردم میخواند شبه افسانه میماند گاه تاریخ علمیست گاه تاریخ فلسفیست در تاریخ علمی و فلسفی اونجا فهمیده میشه که این واقعه چرا با وجود آمد مثلا ما در حادثه کربلا اگر دقت کنیم در واقعه کربلا اگر دقت کنیم اونجا دلایلش در تاریخ روشن میشود که چرا واقعه کربلا به وقو پیوست اگر اون ادله خاص نبودی واقعه کربلا به وقوع نمی نمی‌پیوست بر این اساس است که جامعه بر اساس یک سنتی دارد و پیش می روید. در قرآن کریم هم به این مسئله اشاره شده است فلن تجد لسنت الله تبدیل در سنت خدا هرگز تبدیل را نخواهید پیدا کرد و سنت خدا هرگز دوچار تغییر و تبدیل نمی شود وقتی که قضیه این چونین هست جامعه خودش حقیقت هست حقیقت اعتباری از طرف دیگه بر یک قانونی دارد مسیر خودش را ادامه می دهد و اون قانون قانون علتمندی می تواند باشد پس بنابراین بر کسانی که دنبال ساخت جامعه هست یا بر جامعه سازان هست که به علتهای اه دقت کنن ما اگر می یک جامعه را بدانیم که چرا منحط شده چرا پس رفته باید عواملش رو پیدا کنیم همینطور اگر می جامعه را بسازیم و به پیش ببریم هم باید علل را دریافت و عوامل را شناخت با این هست با شناخت عوامل هست و حرکت بر اساس وامل هست که می شود جامعه را پس برد یا جامعه را به پیش هدایت کرد و سوق داد فلن تجد لسن الله تبدیلا در سنت خدا تبدیلی نیست بر این اساس است که جامعه خودش حقیقت دارد پس نمیشه جامعه را اصلا مورد توجه قرار نداد هیچ جامعه را مورد دید و نظر کلی قرار نداد از طرف دیگه جامعه هم بر اساس یک علت به پیش می رود. این یک طرف قضیه کار طرف دیگه قضیه کار راج به افراد و اعضای جامعه هست در قرآن کریم جامعه را گرچه یک حقیقت معرفی می کند گرچه امت معرفی می کند گرچه از گروه‌ها تحت عنوان حزب یاد میکند ولی این گونه نبوده و نیست که همه چیز رو در قالب جامعه و جمعی ببیند بلکه در قرآن کریم به شکل فردی هم توجه شده است آنجایی که میفرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا خداوند متعال هیچ قوم و گروه اینجا هم واجه قوم آمده است یعنی گروه تقریبا میشه گفت جامعه خداوند سرنوشت هیچ قوم و گروه را تغییر نمیده مگر اینکه در افراد اون گروه تغییرات بیاید بر این اساس بانوان طلبه کابل وقتی میخواهد کابل را جامعه سازی عاشورایی بکند اول به کل کابل باید توجه کند کابل را به عنوان یک جامعه حقیقت بپندارد بعد اتفاقاتی که در این جامعه اتفاق می افتد رو خوب مورد مطالعه قرار بدهد که عوامل این اتفاقات چی بوده است اگر کابل به سمت ارتجاعی به پیش میره یعنی اقبگرد می کند از دینش، از باورش به سستی می گراید، چرا میگراید این اوامل اجتماعی رو باید پیدا کرد و همینطور، عواملی که بشود کل جامعه کابل رو کابل رو به حرکت داد این رو هم باید پیدا کرد عوامل پیشرفت رو هم باید پیدا کرد در شکل جمعی حالا به شکل فردی فردی در همه کابل بانوان طلبه کابل باید دقت کنند که یکی از جهات ومده برای ساخت جامعه سازی آشورای کابل می تواند اعضای کابلی باشد افراد کابلی باشد اشخاصی که در کابل زندگی می کنند خداوند سرنوشت مردم کابل را تغییر نمی دهد. مگر اینکه خود کابلها در خودشان تغییر ایجاد کنند ان الله لا یغیر ما بقوم خداوند و هیچ کاموگروه گروه تغییرات ایجاد نمی‌کند حتی غیرتا این که خودشان تغییر بپذیرند برای این اساس است که بانوان جامعه ساز کابل باید روی افراد کابولی کار کنند علاوه این دلایل بزرگ را مورد بررسی قرار میدهند. اون یک قسمت کار هست یک قسمت بحث است قسمت دیگه کار روی افراد هست حالا ما وقتی بخوایم جامعه کابل رو بیسازیم و تغییر دهیم نوبت به افرادش میرسد از این جهت از امام علیه و السلام هم در او زمانی که میخواهد از مدینه حرکت کنند حضرت آقا و مولا سید و سالار شهدا میفرماید منکان بادلن مهجده بود و موقناً على لقاء الله نفسه فالیرحل معنا فانی راحل و ان شاء الله کسی که میخواهد خونش رو در راه خدا بازل کند دقت میکنن میکنین بازل, بازل باز هم اینجا آمده و کلمه مهجه باز هم اینجا آمده کسی که فقط کشته بشه نه کسی که در راه خدا میخواد مشکلات رو تحمل کند اونم نه مشکلات ساده ساده که به گونه ای که در راه خدا خون دل بدهد کسی که این گونه باشد در راه خدا خون دلش را بعضل کند و موقعاً علا لقاء الله نفسه و نفس خودش را به سمت ملاقات پروردگارش توتون دهد کسی؟ که دارای چونین است فلیرحل معنا پس همراه ما رحلت کند همراه ما سفر کند فا این راحلو مصبحا انشاءالله قطعا من حسین فردا صبح سفر خواهم کرد انشاءالله وقتی مال علیه صلی از مدینه حرکت میکند چنین میفرماید این تعبیر امام علی علیه السلام هم بیانگر هویت اجتماعی و مسائل اجتماعی است و گذشته از مسائل اجتماعی بیشتر حالت فردی رو مورد خطاب قرار می‌دهد من کانه یعنی در مدینه مردم زیاد بود مدینه خودش یک جامعه میتونه در نظر بگیرم از یک طرف کل افرادی که در مدینه حس صدا میزند به انوان جامعه از یک طرف فردی فردی صدا میزند نمیگه کل مدینه حرکت کند کل جامعه مدینه حرکت کند بلکه فردی فردی من هر کسی که بادلا مهجته هست و موتنا علا قائل الله نفسه هست اینی افراد فلیرحل معنا فا راحل راحل و مصبحن الله. پس جامعه سازی کابل جامعه سازی آشورای کابل از یک جهت باید و با مسائل کلی کابل دقت کرد از طرف دیگه باید روی فرد فرد جامعه کابل کار کرد و این کار خیلی سنگین هست ما شما قبلا خواندید در کابل بیش از پنج میلیون نفر هست این پنج میلیون نفر باید کلش رویش کار بشه که جامعه ساز آشرایی ایجاد بشه حالا از کلش هم بگذاریم تقریبا نصف مردم کابل وقت شیعان باشد حداقل شیعیان باید یک جامعه شیعی آشرایی ساخته بشه که فرض بگیریم دو میلیون نفر این دو میلیون نفر چقدر طلبه لازم دارد که روی اینها کار کنه یک نفر طلبه را اگر فرض کنیم که 100 نفر را می تواند به مسائل شرعیش رسیدگی کند ده نفر طلبه میشه هزار نفر هزار نفر طلبه چقدر نفر میشه تا که برسن در میلیون پس بر این اساس ببین چقدر طلبه زیاد در کابل نیازمند هست اونم طلبه خواهر اگر باشه این در حال است که ما و شما در کابل تا هزار نفر طلبه خانوم نداره بلکه کمتر از هزار نفر هست طبق اون آماری که امسال از شورای مدیریت حوزه علمی کابول در امتحان اعلام شد یک چیزی در ذهن بنده مانده حدود از 500 الی 600 نفر ظاهرا به امتحان شرکت کرده یعنی حدود 500 نفر 600 نفر طلبه زن در کابل وجود دارد حالا ما همگانش را به شکل کلی در نظر بگیریم فکر کنیم هزار نفر طلبه خانم در کابل وجود دارد این هزار نفر طلبه خانم چند نفر را میتواند در کابل به مسایل شرعیش برسد پس اینجاست که یک برنامه ریزی دقیق یک برنامه ریزی عمیق می که با ای تعدادی اندک هزار نفری اونم هزار نفر اگر باشد ما بیتوانیم کابل رو یک جامعه آشرایی بی سازیم. این در حال است که با کمال تأصف باید یاد آوری کرد که در برهه‌های های از زمان طلبه ها در ریزیش می کند. دارن می ریزن. ریزش میکنن یعنی چه؟ یعنی از واده طلبگی بیرون میشوند، خارج میشوند بعضی های هستن همینطوری بعضی دیگه فریبیشان میدهند بعضی دیگه هستن اقایدشان را تخریب میکنن برای این اساس ریزش باوجود می آید ما اگر هزار نفر طلبه در کابل داشته باشیم دوصد نفر از این طلاب ریزش کرده واقع ممانعت 800 نفر طلب این 800 نفر 800 رو ضرب 100 نفره بگیریم چند چند نفر چقدر نفر میشه فقط همون اندازه رو میتوان مثلا طلاب به مسائل شرعیهش برسند از این از اینجا پیدا میشود که کارکرد یک طلبه چقدر بزرگ میتواند در کابل باشد یعنی یک طلبه حد اقلش باید به هزار نفر رسیدگی کند یک نفر طلبه حد اقلش به هزار نفر یعنی در همی ساحه ما و شما در همی کوتل شاید پن... هزار تا خانوم نباشد در اینجا یک طلبه باید بی تواند نقش بازی کند یک طلبه یک طلبه خوهر. یعنی یک طلبه خواهر در اینجا باید بیتواند کل نیازمنده های خانم هایی که در این صاحب وجود دارد رو پاسخگو باشد این گونه اگر تقسیمات بی شود، می شود حد اقل ساخت و ساز جامعه آشرایی را دید ابتدای کار، آغازی کار. تا اینکه این جامعه ساخته بشه، خیلی زمان میبرد و خیلی تلاش لازم دارد چند تا ویژگی اجتماع را بیخانیم. حداقل جامعه‌ها سه تا ویژگی را درون خودش دارن یک اتفاقی نبودن قانون ها یعنی بر اساس اتفاق مردم خوب یا بد نمیشوند اگر مردم خوب میشوند هم یک دلیلی وجود دارد اگر مردم بد میشوند هم یک دلیلی وجود دارد در همی و روز جای خواندم نوشته بود اگر مردم در اول متدین هستند بعدن کم کم دارند بی دین خدای نخواسته میشوند یا سست عقیده میشوند این بیانگر سست علمای آن جامعه است این بیانگر سست انصوری طلبه های اون جامعه است این بیانگر آن است که عالمان دین اون جامعه واقعا عالمانه کار نکرده بلکه عالمنمایی کار کرده چون روز قبل خواندم بعضی از مردم ممکن علم داشته باشند ولی عالمی حقیقی نباشند بلکه عالمنما باشند دومین ویژگی که جامعه دارن پیوند داشتن با خداست همه امور به اراده خداوند متعال سورت می پذیرد. ما اگر در کشور افغانستان زلزله ها رو با خود داریم سیلاب ها رو داریم و همینطور در کشورهای دیگه هم هست اینا بی دلیل نیست حتما یک دلیلی دارد این یک نکته رو به عنوان تأسیف باید یاد کرد یکی از طلاب برایم ارتباط گرفته بود، پیام گذاشته بود که اگر عروسی بیشود و نکاح خونده نشده باشد چی طوری میشه؟ شبه از این سوال کرده بود تعجب کردم و ازخار ناراحتی کردم گفتم که اگر خودشان به این مسئله توجه نکرده آیا قوم خیش مسلمانه ندارن؟ بعد نوشته بود که استاد این طوری مگو این طوری نگو خوب وقتی چنین مسئله در کشور اسلامی اتفاق می‌افتند، معلومه که اون جامعه باید از بین برود معلوم است که باید سیلاب‌ها خوب و بد را از بین ببرند معلوم است که باید زلزله ها بیاید معلوم است که باید که لرزه ها بیاید وقتی عذاب خدا آمد دیگه خوب و بد هم نمیشناسد وقتی عذاب میآید گفته میشه که خدایا بین از این مردم بعد آدم های خوب هم هست بعد خداوند متعال میفرمایید که بله خوب هست ولی هم خوبا هم باید عذاب بشه چرا؟ چون که هم ربا معروف و نحی کرد نکرد این توریست به اراده خداوند متعال انجام میشود در جامعه هرچی اتفاق میفتد خدا قبلن سنتش رو همان طور استوار کرده است و بر اساس رضایت خداوند متعال انجام می گیرد سومین ویژگی که جامعه دارد تأکید بر اراده و اختیار انسان هست آدما جامعه را یا خوب می سازن یا بد می سازن. آدم آدمهاست یک محله را یا می سازن یا خراب می کنن. در قرآن کریم در قسمت اعمار ما و شما چی داریم؟ در مسجد راجع به مسجد هست میگن باید کسانی که اعتقاد به خدا و روز قیامت دارد آنها مسجد را آباد کنند و اعمار کنند این معنیش اینه که آدمی میتوانند اعمار کنند زمین خدا را باید اعمار کرد باید آباد کرد کی آباد کنند؟ آدم ها آباد میکند و کی خراب میکند؟ آدم ها خراب میکند آدمی در اختیار خودش چون این کار را میکند بنابراین کسانی که بد میشوند به اختیار خودشان بد شده هست. کسانی که خوب میشوند هم به اختیار خودشان خوب میشود کار زور در دین نیست لا اکراه و فددین در دین اکراه و اجبار نیست، چون در دین اکراه و اجبار نیست، یعنی آدم ها مختارن یعنی اختیار دارند جامعه اصازان کابل بیدانند، بانوان طلبه ای که میخواهند جامعه آشرایی در کابل بسازد بی بیدانند که به زور نمیشود جامعه آشرایی ساخت اما بر اساس اختیار می شود و با مردم باید اون عوامل سازش را زمینه سازی کرد تا مردم از روی اختیار جامعه کابل و جامعه آشرایی بی سازند و زر نمی شود کار زر دوام هم پیدا نمی کند ظلم ظالم نمی سوزند پس کار اکراهی معنی ندارد کار زور و جبری معنی ندارد بلکه انسانها ها به اختیار خودشان باید بی سازن. این از ویژگه های جامعه بود که باید دقت کرد این نکاتی که در این روزها بیان می شود برای یک آدمی که اراده جدی برای یک طلبه خانوم و غیر خانومی که اراده جدی بر جامعه سازی دارد نکات بسیار کارساز و امیق هست دقت کنید این نکات را باید در مسیر کار در ذهن داشت تا بتوان جامعه را ساخت و الا جامعه دارای نقص و عیب شود. طالبان که امروز حکومت میکنن اینها هم دنبال همین هست که جامعه اسلامی بسازن چرا همه مردم ازشان بد میبرند؟ چون این مسئله جبر و اکراه در کارنامه عملشان هست بجای جای که به مردم زمینه سازی کنن فرصت سازی کنن یا انگیزه دنن و اجبار و چون چونین کار میکنن که البته شاید همچنین نکنن تبلیغات دشمنان هم هست همه مشکلات از اینها هم نیست ولی به هر حال اون چیزی که تباروز کرده است کار اجباری و جبری است هجاب جبری، پوشش جبری این کارساز نیست یا خانوم باید بیداند وقتی چادر میپوشد، احساس کند که خود را به رحمت خدا وارد کرده است خود را به خداوند متعال نزدیک کرده است وقتی یک خانوم در قلبش چنین احساس را کرد وقتی چادر را کنار بگذارد می ترسد. چرا فرزندان کوچک را دیدی وقتی نزدیک پدر و مادرش میشود می میشه ولی وقتی پدر و مادر دور میشوند گریه میکنن چرا چون میترسن آدم ها هم همینطوره چرا ما از مرگ میترسیم چون اونجا خود را تنها احساس میکنیم وقتی یک فرد ما مرد ما یا زن ما مثلا چادر بپوشد و با چادر پوشیدن خود را در محضر رحمت الهی احساس کنه. دیگه اگه چادر نپوشد میترسد از اون بود نمیتواند چادر نپوشد اینجاست که فهمیده میشه کار جبری و غیر جبری چی معنی میتواند داشته باشه در متن خوانده بودیم نوشته بود اگر دیدین در جای پلیس زیاد هست این بیانگر اینست که مردم آنجا آدمای بری هست هر جای دیدید پلیس کم است و مردم داره به آرامی زندگی میکنند معنیش اینست که مردم آن ساحه خوب مردم هست این است اما چند مسئله رو هم بخوانیم راجع به اینکه جامعه عقب گرد میکند راجع به اینکه که جامعه بر میگردد راجع به این که جامعه از بین میرود عوامل این جامعه چهار نکته رو حداقل میتوان یاد کرد یک به و ظلم در جامعه که ظلم صورت بگیرد اون جامعه بدون شک ساخته نمیشود ظاهرا از حضرت امیر علیه السلام سوال کردند که اگر یک حاکم مسلمان حکومت کند ظالم باشد اینجا بهتر هست یا یک آدم غیر مسلمان حکومت کند و عادل باشد اون بهتر است. اما علیه فرمود هم و غیر مسلمانی که عادل هست چطور؟ ایمه علیه السلام دلیلش رو هم بیان می‌فرماید. می‌فرماید اون کسی که مسلمان هست اسلامش به درد خودش می‌خوره. اما ظلمش در جامعه سرایت می‌کنه. پس جامعه خراب می شه. اما اون نفر که غیر مسلمان هست اون کفرش به خودش بر می ربط به کل جامعه ندارد کل جامعه از بین نمی ولی عدالتش به اجتماع بر نظام جامعه ساختن می بنابراین ظلم یگانه مسئله است و به یگانه عامل و دلیل است که جامعه از بین می رود. دومین مسئله تفریقه و تشدوت هست. مردم در پرگاه سقوط بودن اسلام آمد بین مردم تعلیف قلوب کرد. قلب های مردم را به هم گره زد و اعلام کرد انما المؤمنون اخوه همان و اهل ایمان با هم برادرند این یعنی هم اتحاد یعنی هم همدلی جامعه ای که هم دل باشن ساخته می شوند و از همین جا یک نکته رو هم می شود استنباط کرد و اون چیز کار تشکیلاتی کار تشکلاتی یعنی چه یعنی یک ایده از مردم میآید یک تشکلات راه میاندازند همه با هم یک کار را انجام میدن شبیه همه کاری که شما انجام دادید وقت شما یک تعداد ما و شما میاییم یک تعداد ما و شما عکس یک فیلم گیریم یک متن می نویسیم همه اینا که کنار هم میشه یک کار انجام بشه ولی یک نفر میتواند همه را انجام دهد شود وقت جامعه متحد بود میشود ساخت بر این اساس است که باید بانوان طلبه کابل همدست شوند تا بتوانند جامعه کابل را بیسازند عالمان دینی همدست شوند باید کار سازمان یافتگی صورت بپذیرد باید بر اساس تشکیلات صورت بپذیرد تا بتوان برای ساخت جامعه کابل موفق شد و الا نمی‌شود بر این اساس تفریقه و چند پارچگی از عوامل سقوط یک جامعه میتواند باشد سومین عاملی که میتواند جامعه از بین رفت یعنی جامعه را از بین برد این است که کسانی که امر به معروف و نهی از منکر میکند در جامعه وجود نداشته باشد ترک امر به معروف و نهی از منکر مساویست با سقوط جامعه ترک ایجاد انگیزه به خوبی ها و بد بین کردن مردم نسبت به بدی بدیها مساویس به از بین رفتن جامعه چرا؟ چون هر کس به سمت خودش روان می شود ولی وقتی امر به معروف و نحی ازمون کرد بود عذاب خدا هم نمی آید آدم خوب همین یاد شد آدم خوب باشد امر به با معروف و نحی از کرد نکند وقتی عذاب آمد همگی رو فرامید و چهارم این که می تواند جامعه را از بین ببرد فیسک و فوجور هست اون را رو شما بنام شنیده اید حتما یا همون اسپانیای فعلی اندلس یا اسپانیای فعلی یک کشور اسلامی بود کفار چند بار به این کشور حمله کردند، ولی موفق نشد که این کشور را شکست بدهند. بعد از چند بار شکست خوردن دشمن در مقابل مسلمانان اون دلوز بعد رفتن چکار کردند، نشستند و فکر کردند که چرا شکست میخورند و چرا اینها رو شکست داده نمیتوانند؟ چرا مسلمانان را نمیتوانن شکست بدهند. آمدن دلیل یابی کردن گفتن چون اسلام اینها نمیگذارد که اینها شکست بخورند. ما شما در عراق مشاهده کردیم آیت الازمه سیستانی فتوه صادر کرد داعش از بین رفت مراجع دیگه هم همینطوری آیت الازمه شیرازی هم همینطوری فتوه صادر کرد مردم همدست شدن داعش از بین رفت اونجا گفتن اسلام نمیگذارد که غیر مسلمانان در این کشور پیروز بیشه لذا چی کار کردم؟ گفتن ساده ساده، خلاصه ارز کنیم ساده ترین راهش این است که یک عده از دختران خوشنما را وارد جامعه بکنیم بانوانی که بین جامعه هست برایشان در هر جای درست و نادرست ایجاد کار کنیم وقتی چشمان جوانان مسلمان و ای دختران زیبا روی افتاد هر چه دین دبیند دل کند یاد لذا کم کم در دلشان اثر میکنند وقتی به دلشان اثر کرد قلبشان کم کم تاریک شد نور ایمان کم کم از بین میرد وقتی نور ایمان از بین رفت پیروزی حاصل میشه همینطوری هم شد بعد از چند مدتی که دختران و زنان اون چنانی وارد شد و جامعه اون اوندولوز کم کم ایمانشان سست شد و یک یک بار حمله کردن کشور اون اوندولوز از بین رفت چرا چنین شد؟ چون جامعه فاسق شد چون جامعه از دین دور شد چون از حقایق اسلامی دور شد جامعه ای که دارای فسق و فجور باشد سرانجامش حتما از بین رفته نیست بنابراین کابل از بین نمیرد تا جز این که این کابول دوچار فیسک و فوجور خدای نخواسته بشه و متاسفانه در این اواخر هم شد همه الان که همه الان هست ما و شما دختران را میبینیم در همه کابل که باید به خدا مناه بود این بیانگر چیست؟ بیانگر فسق و فجور است که سبب میشود کابل هم سکود کند و باید مطمئن بود که اگر کابل غرق در فسق و فجور بشود همه کوه هایی که ما شما در پیش روی خود میبینیم حتما میوف، پایین می پایین میلرزد. و حتما سیلا و باران در همه کابل هم جاری می شود و همگان رو خواهد برد این اراده خداست فلان تجد سنت الله تبدیلا در سنت خدا تبدیل نیست تغییر نیست وقتی خداوند میفرماید شما گناه کردید دامن خود شما را می گیرد این سنت خداست کسی که میخواد چشمش رو کور کند باید چشمش کر بیشود نمیشود کسی خود رو از بالای کوه بیاندازد بعد بگه من سالمی سالم باید زیر کوه بیایم نه وقتی بدون وسیله از بالای کوه خود را پرتاب کردی باید یا کاملا از بین بره یا یک قسمت بدن بچار علم علت و عیب بشه این سنت الهی است معلی سلام می‌فرماید من کان بادلن مهجته و موقنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا فإني راحل مصبحا ان شاء الله تعالی حالا که طلبه های بانوی کابل خودشان را شناخت که باید هویت سینفیشان چگونه باشد جامعه رو شناخت کم کم و شما داریم به اون هدف اصلی ایخش از نظری تیوریک و نظری و بینش نزدیک میشه و به این سمت حرکت کنیم تا که انشالله بیتوانیم یک نقش را همچون نقش زینبی بازی کنیم انشالله و تعالی خوشا به حال افرادی که در این وادی هستند خوشا به حال اون خانم ها و آقایون که در این وادی هستند خوشا به حال اون بانوان که طلبه هستند که اینها در دنیا و آخرت افراد ارجمند هستند اینها براستی بانو هستند همو بانوی که عنوان احترام آویز و زنان هست عنوان احترام آمیز <تصفيق> همگی بانو نیست همگی آقا نیست همگی ارجمن نیست، بلکه یک عده خاص اون هم با اختیار خودش واردین وادی می شود توفیق لازم دارد این توفیقات رو باید برای خویش ایجاد کرد که با این کار هست می توان به ساخت جامعه آشرایی هم قدم برداشت این شعر شعر قشنگ است شعر رو به شما خواهم خوند و قبلش صلوات و سلام برای حضرت آقا و مولای مان امان, امان حسین علیه صلات و, صلات و سلام بیرست اللهم صد السلام علیک يا أبا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بذنان در زیارت آشرا می خاندیم. همه با هم بخوانیم چه شعر قشنگ و زیبایست همون شعری که می گیم این دل تنگم. اما يا ولي بحق الين يا بابر بحق فوقنا يا محسن بحق الحسن يا قديم الاحسن بحق الحسين اللهم بحق تسعة الموصومين من ذريه القسين الهی اون چه خیرمان هست پیشه بگردان بدی بدخواهن رو به خودشان برگردان اله ما را جمله طالبان علم دین خودت قرار ده الهی ما را در حرکت کردن به مسیر حسین و زینب موفق بدار الهی گناهان من ببخش و بیامور تا نبخشده از دنیا مبر حسن توفیق حسن آقبر قنایت فرمای مرا جمله شیعان و یاران امام عصر من قرار ده مولای من رو نزدیک فرمای براورد شدن حوائج مشنوعی محتاج ملتمسین دعا انجل قبول طاعات و عبادات به بخیری سلامت و تعجیل فرج امام عاصر علیه صلاة و سلام بر محمد و محمد صلوات